خواب دیدم گریمی کردم خانه زیر سه پنهان بود خواب دیدم خانه ات با باسل بوران بود خیز کردم تمام خوابم را ترس من روی تخت می ریزد با تمام خواب برام گردان عشق یک مرد ساخت می ریزد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 با تمام غاب برام گردان اشک یک مرد سخت می ریزه. طول و ارز اتاق تنهایی پس کن اامق این صبوری را در خودم دست و پا زدن کافی است قطع کن دست و پای دوری را. داق بستی به زخم چرکینم روز هایم افونتی شده است روز ها را شمردم جان نیست در اتاقی که خط خطی شده است یک نفر بین ما دو تا و با تا حد تا تعاملش خوب است زیر پا می کشی که میافتم تا تو باشی تعادلش خوب است خواب دیدم که ریسه می رفتی خندعت را میان بازوهاش تار تار گلوی من لرزید عشق من دست رفته در موهاش غرق کم بود های احساسی زندگی در جنون نیازم شد کفر یعنی تمام یومیها ها اسم تو مهر جانم آزم شد پنجره در اصارت دیوار پرد پوشانده هر نمایی را چشم را به دور می دوزم تا ببینم که تو کجایی را در خیابان کسی شبیهت نیست شهر شهر روبه بر برخلاف هواشناسی ها باز هم هوا که بارانیست یک نفر بین ما دو تامانده دست هایت به او پرست شده است چشمها را به هیچ میدوزم پای که ملتمس شده است پشت کردی به من که رو بودم حق من هرچه غیر این درده است یک نفر قاب از و زیده یک نفر که عجیب نامرده است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 در کنار کسی قدم هایت در کنار خودم نمیمانم خواب دیدم سفید پوشیدم، لای صدر و کفن بپیچانم بین این دردهای اجباری از تو حتی رها شدن سخته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 روی تختم به فکر تشریحم هم بدنم را لای لایه می کردی. یک نفر قاب است و دزدیده. یک نفر با نقااب میرقصد. دست در پیچ تند موهایت لای این پیچ وتاب میرقصد. من که طفل درون تو بودم.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 خواب دیدم که گریه می کردم روز و ماه زمان فوتم را